هزار افسان به نام خدای یگانی مهربان سلام افثانه ها این امکان رو به ما میدن تا از طریق اونها راجب گذشته قضاوت کنیم و شناخت درستی از آینده به دست بیاریم و فرهنگ های گوناگون دیگران رو هم بشناسیم این هفته افثانه ای رو از مردمان عرب براتون نرم میکنم به نام افثانی جواهری داخل یک جعبه شیشه ای از کتاب افثانهای عرب نویسندگان حسنی فریز و عبدالله اتایب با ترجمه از محمد شمس. امیدواریم از شنیدن این افثانی زیبا لذت ببرید در روزگاران قدیم بازرگان ثروتمندی به نام جلال به همراه تنها دخترش عزه نام داشت زندگی میکرد. مادر عزه سالها قبل از دنیا رفته بود و جلال با زن دیگهی که سفه دختر به نامهای ندا، نجدا و نهیدا داشت ازدواج کرده بود هر وقت بازرگان افثانه ما به سفر میرفت از دختراش میپرسید که چه سوغاتی دوست دارن تا از سفر برشون بیاره ندا میگفت من جواهر میخوام می میگفت برای من طلا بیارین نهیدا هم لباسهای زیبا و شیک میخواست اما عزه میگفت من از خدا میخوام که پدرم سالم از سفر برگرده این تنها چیزیه که من از خدا میخوام بنابراین بازرگان از سفر که برمیگشت اونجوری که اون سه تا دختر خواسته بودن براشون میآورد و زیباترین هدیه ها رو هم به عزه میداد سه خواهر یعنی ندا نجدا و نهیدا از دست عزه عصبانی می شدن به اون حسادت میکردن چون اون همیشه بهترین و زیباترین هدیه ها رو از پدرش دریافت میکرد سه خواهر یه روز عزه رو محاصره کردن و گفتن چرا باید پدر همیشه بهترین هدایا رو برای تو بیاره ها؟ چرا تو چیزی از پدر درخواست نمی کنی؟ گفت خدا رو شکر من همه چیز دارم به چیزی نیاز ندارم که از پدرم تقاضا کنم یکی از دخترها گفت تو باید از پدرت بخوای جواهر داخل جعبه شیشه ای رو برات بیاره ازه گفت ولی من نیازی به جواهر داخل جعبه شیشه ای ندارم اما سه دختر تاکید کردند که عزه این درخواست رو از پدرش بکنه اونا فکر میکردن که اگه پدر عزه به دنبال جواهر جعبه شیشه ای بره گرفتار خطر بزرگی میشه و مرگش حتمیه و وقتی هم پدر عزه بمیره تمام ثروت اون به مادرشون میرسه و بر همین اصرار داشتن که عزه از پدرش جواهر جعوی شیشهای رو درخواست کنه خلاصه روز بعد بازرگان یعنی پدر عزه آمادهی سفر شد سفری دور و دراز بله بازرگان افثانه ما آماده سفر شد قبل از رفتن از اون سه دختر پرسید چه سوقاتی از سفر برای بیارم؟ یکی گفت من طلا میخوام یکی گفت من جواهر میخوام و دیگریم گفت برای من لباس های زیبا و خوشدوخ بیار و پدر از دخترش عزه پرسید و اونم جواب داد پدر برای من جواهر داخل جعبه شیشهای بیاریم بازرگان به سفر رفت، رفت و رفت و رفت کاراش رو انجام داد و موقع به بیاد حرف ازده افتاد به همه جا سر زد و از همه کس درباره جواهر داخل جعبه شیشهای پرسید اما هیچ کس چیزی درباره جواهر داخل جعبه شیشهی نشنیده بود ولی بازرگان چون برای اولین بار بود که دخترش از آن درخواست سوقاتی میکرد با خودش عهد کرده بود که هر جوری شده جواهر داخل جعبه شیشهای رو پیدا کنه و برای دخترش ببره بنابراین به جستجوگ خودش ادامه داد از این پرسید از اون پرسید اینجا رفت اونجا رفت تا بالاخره پیر زنی بهش گفت ای من تو در جستجوی چیز خطرناکی هستی چون ممکنه به خاطر اون جونت رو از دست بدی. آیا تو میدونی که اصلا جواهر داخل جوی شیشه ای چیه؟ بازرگان فکری کرد و گفت: نه، نمیدونم. تو چیه؟ فیرسان سری تکوند و گفت: اون جواهر شاهزاده که توی خونه‌ی شیشه ای زندگی میکنه. و ستا شب و روز از اون مراقبت میکنن اگه داخل اون خونه بشی غول ها حتما تو رو میکشن بازرگان پرسید چجوری میتونم وارد اون خونه بشم چجوری؟ پیرزن گفت مثل اینکه خطرش برات مهم نیست ها بازرگان جواب داد من باید هر طوری شده اون جواهر داخل جعبه شیشه ای رو هرچی باشه هرچی باشه برای دخترم ببرم پیرزن گفت باشه حالا که اینقدر اصرار داری و مسممی باشه بد میگم که چی کار کنی. گاهی وقتا غول ها میخوابن وقتی اونا خواب باشن همه جا آرومه اما وقتی بیدار بشن خیلی سر و صدا میکنن بازرگان پرسید نشونی اون خونه رو بده من باید هرچه زودتر به اونجا برم و پیرزن هم نشونی خونه رو به بازرگان داد و بازرگان افسانهٔ ما به طرف خونه شیشهی غولهار حرکت کرد بازرگان نشونی خونه رو از بیر زن گرفت و به راه افتاد بعد از مدتی جست خونه رو پیدا کرد سر و صدای زیادی از اونجا به گوش می رسید بازرگان با خودش گفت با این سر و صداها پس معلومی که گوله بیدارن باید صبر کنم تا گوله ها به خواب خوش برن اون وقت وارد خونه یه بشم بازرگان یک روز سب کرد وقتی دیگه هیچ سر و صدایی به گوشش نرسید فهمید که غول به خواب رفتن اون وقت آروم و بی سر و صدا وارد خونه شیشه ای شد به محض ورود به خونه چشمش به شاهزاده بلندقامتی افتاد شاهزاده با نگرانی پرسید تو کی هستی؟ اینجا چه میکنی؟ اگه به دست غول بیفتی حتما کشته میشی؟ بازرگان یا همون جلال گفت غول که الان در خوابن. راستش من دختر زیبایی دارم که برای اولین بار از من سوقاتی خواسته و اون سوقاتی جواهر داخل جعبه شیشهیه من پیر زنی رو دیدم که به من گفت تو اون جواهری آیا این راسته؟ شاهزاده جواب داد بله من جواهر داخل جعبه شیشهیم مردم منو به این اسم خونن چون توی این خونه شیشهای زندگی می شاهزاده بعد مکسی کرد و ادامه داد اگه اگه تو واقعا زیبا باشه من حاضرم با اون ازدواج کنم اما اگه تو در مورد زیبا بودن دخترت به من دروغ گفته باشی اون وقت گولها تو رو میکشن بازرگان گفت پس با این اوصاف تو باید همراه من بیای تا از نزدیک دخترم رو ببینی و زیبا بودنش برات ثابت بشه شاهزاده گفت نه نه نه این جعبرو رو به اون بده کافی اون در جعبرو رو باز کنه و به داخل اون نگاهی بندزه خدمتکار من که با تو میاد این جعبرو برمیگردونه بر می اون وقت من داخل جعبه رو می بینم و میفهمم که آیا دختر تو واقعا زیباست یا نه؟ بازرگان پذیرفت و راهی رو که اومده بود برگشت در حالی که جعبرو هم به همراه خودش داشت. بازرگان وقتی به خونه خودش برگشت جعبه رو به پیرزن خدمتکار داد و گفت این جعبه رو به دخترم ازه بده خدمتکار که کنجکاف شده بود جعبه رو باز کرد و داخل اون رو دید خدمتکار شاهزاده جعبه رو به بازرگان داد و بازرگان جعبه رو نزد شاهزاده برگرد شاهزاده جعبه رو باز کرد و چشمش به یک پیرزن خدمتکار افتاد عصبانی شد و گفت تو به من دروغ گفتی من اینجا فقط عکس یک پیرزن زشدون رو میبینم بازرگان با تعجب گفت یعنی دختر من واقعا زیباست و بعد جلو رفت و عکس رو دید و گفت نه نه این عکس دختر من نیست این این عکس خدمتکار پیر منه به بعد تکید کنن اضافه کرد تو تو باید با من بیایی دخترم را از نزدیک ببینی اون وقت اگه به نظرت زیبا نبود منو بکش شاهزاده برای اثبات حرف بازرگان مجبور شد همراه اون به خونه بازرگان بره تا از نزدیک دختر بازرگان یعنی ازده رو ببینه بله شاهزاده وقتی به خونه یه بازرگان داخل شد ازده دید مهرون به دلش نشست اون با خودش گفت خدای من این دختر واقعا زیباست پدرش درست میگفت خیلی هم متین و ملیه و خلاصه چند روزی اونجا خونه یه بازرگان موند و بعد تصمیم گرفت با ازده ازدواج کنه اونا جشن بزرگی برپا کردن و رسما به عقد همدیگه در اومدن سه خواهر یعنی ندا و نجدا و نهیدا از اینکه شاهزاده با عزه ازدواج کرده بود خیلی ناراحت بودن و به اون حسابت میکردن به این تصمیم گرفتن کاری کنن که عزه ناراحت بشه بعد نخشهی کشیدن و پیش اون رفتن و گفتن عزه آیا شوهرتون مثل ما آدم یا که جادوگره آیا اون مثل ما آدم مریض میشه و میمیره عزه نمیدون اسم اونها چه جوابی بده وقتی شاهزاده به خونه برگشت از اون پرسید میشه به من بگی تو انسانی یا جادوگر؟ اصلا تو مثل ما مریض میشی؟ شاهزاده گفت چه کسی از تو خواسته اینا را از من بپرسی؟ ها؟ هیچ میدونی با این حرفها ممکنه به من صدمه بزنی؟ من نمیدونم پدر و مادرم کیا بودن فقط میدونم چند قول از من مراقبت میکردن اما مطمئن باش که من قول نیستم من قدرت جادویی زیادی دارم چیزی که من از اون صدمه میبینم شیشه های خرد شده است. اززه با تحجب پرسید شیشه های خرد شده؟ شاهزاده جواب داد بله شیشه های خرد شده اگه من روی این شیشه ها بخوابم مریض میشم و میمیرم خب حالا تا اینجای حرفم رو شما شنیدین. اجازه بدیم از سه تا خواهر حسود و بدجنس بگم. سه خواهر وقتی از زداشت با شاهزاده حرف میزد پشت در اتاق اونا به گوشی ایستاده بودن و حرفهای این زن و شوهر رو میشننیدن. بعد حرفها رو که شنیدن رفتن نقشه کشیدن. چه نقشه براتون تعریف میکنن. بله سه خواهر بدجنس یه روز که اسه شاهزاده رو آماده کرده بود و خودش بیرون رفته بود آروم وارد اتاق شدن و پودری از شیشه شکسته و خرد شده روی تخت شاهزاده ریختند شاهزاده بیخبر از همهجا از بیرون اومد و چون خسته بود رفت و روی تخت خوابید به محض اینکه روی تخت دراز کشید احساس درد شدیدی کرد و فریاد زد آه آه چرا میخواستی منو بکشی چرا با فریاد شاهزاده عزه وارد اتاق شد شاهزاده دوباره فریاد زد چرا چرا چرا میخواستی منو بکشی بعد خدمتکارهای خودش رو صدا زد و به اونها دستور داد که دوباره اونو به خونه ی خودش برگردونن. و بعد به خدمتکاراش گفت اگه عزه به خونه ی شیشه اومد اونو بکشین و اجازه ندین به اونجا نزدیک بشه. ازه که گیج و منگ شده بود و نمیدونست چه اتفاقی افتاده با ناراحتی نزد پدرش رفت و ماجرا رو برای اون تعریف کرد و از اون کمک خواست. پدرش گفت تو باید اون پیرزن رو پیدا کنی که نشونی خونه شیشه ای رو به من داد. شاید اون بتونه به من کمک کنه. عزه آزم سفر شد و به جای رسید که پدرش پیرزن رو دیده بود. داستان رو برای اون تعریف کرد. پیرزن گفت: "اگرها نباش دختر، جان. اون نمی میره اما مریض شده. بیماری اون خیلی طولانیه سالهای سال بیمار میمونه و خوبم نمیشه عزه در حالی که عشق میریفت به پیریزن گفت حالا باید چیکار کنم؟ پیریزن گفت تو میتونی اونو از بیماری نجات بدی؟ به شرط اون که هرچی بهت میگم خوب گوش کنی؟ عزه گفت من آماده در باید چیکار کنم؟ پیریزن گفت در شمال دور کشوریه که داناترین حکیم دنیا اونجا زندگی میکنه، تو باید نزد اون بری و براش یک سال و یک روز تمام کار کنی بعد از اون از حکیم بخواه تا راه خوب شدن شاهزاده رو به تو بگه. ازه با شنیدن این حرف فورم افتاد و رفت رفت و رفت و رفت تا بوم کشور رسید بله، ازه دختر افسانه ما رفت و رفت تا بالاخره حکیم رو پیدا کرد و به اون گفت: من میخوام شاهزاده همسرم رو نجات بدم. هر کاری که بگید حاضرم انجام بدم. حکیم گفت: باید یک سال و یک روز تمام برای من کار کنی. بعد از اون به تو میگم که همسرت رو چگونه مارج کنی. از یک سال و یک روز تمام برای حکیم کار کرد حکیمون گفت مثل یک حکیم لباس بپوش صورتت رو بپوشون تا کسی تو رو نشناسه به خونه شیشهای برو و هفت هفته از شاهزاده مراقبت کن و از این دارو به اون بده بخوره اون وقت بخ بعد از هفت هفته میبینی که همسرت بهبود پیدا کرده و خوب خوب شده ازه لباس حکیم ها رو پوشید و به خونه شیشهای رفت و به شاهزاده گفت من حکیم تو هستم و میخوام تو رو معالجه کنم اما قبل از این کار باید قسم بخوری که وقتی خوب شدی هرچی گفتم انجام بدی شاهزادم قسم خور هفته گذشتند و شاهزاده کم کم قوی و قوی تر شد و بلاخره روزی رسید که از رخت خواب بلند شد حالا دیگه کاملا سالم شده بود حکیم بون گفت میبینم که حالتون خوب شده و وقت اون رسیدی که به قسمی که خورده بودی عمل کنی شاهزاده لبخندی زد و گفت بله حکیم هرچی شما بگید من انجام میدم و حکیم لحظه ای سکوت کرد و شاهزاده همچنان منتظر شنیدن درخواسته حکیم بود بالاخره حکیم به سخن در آمد و گفت من از تو میخوام که به خونه نزه همسرت برگردی همسرت توی دنیا تو رو بیش از هر کس ای دوست داره اون هیچ وقت سعی نکرد و به تو آسیبی برسونه شاهزاده سرش رو پایین انداخت و با شرمندی گفت من من وقتی همسرم رو ترک کردم با خشونت با اون رفتار کردم شاید شاید اون دیگه منو دوست نداشته باشه حکیم گفت نه اصلا این طور نیست اون طور خیلی دوست داره شاهزاده آهی کشید و گفت آه، همسرم واقعا زنی زیبا و مهربون بود الان یک ساله که از اون بیخبرم و نمیدونم کجاست حکیم گفت به چشمایی من نگاه کن شاهزاده به چشمای حکیم نگاه کرد و فورا اونو شناخت. حکیم هم دست مالی رو که با اون صورتش رو پوشونده بود باز کرد و شاهزاده از دیدن همسرش خوشحال شد و با شادی گفت آه تو جواهر منی جواهر داخل خونه شیشه ای از اون روز به بعد سالهای سال اون دو به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کرد افثانه عربی براتون نقل کردن به رام افثانه جواهری داخلی یک جوی بر گرفت از کتاب افثانه های عرب نویسندگان حسنی فریز و عبدالله تائب با ترجمه از محمد شمس گفته میشه افسانه ها نقلی که اکثرت غریب به اتفاق اونها پایانی خوش و عاطفی دارن چرا که در افسانه ها زشتی های اخلاقی شکست میخورند و زیبایی اخلاق پیروز میشه ازار افسان کار مشترکی است از نویسنده زینت صالح پور ویراستار الهام اشجار اجرا مهران دوستی صدا الهام حجاب تألیف کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه ای دیگر بدرود